فصل اول، پیش از آن واقعی بزرگ آشق زمزمه می کند، فریاد نمی کشد بانوی گل به گونه انداخته با لحجه شیرینش گفت باید تخیل کنیم که در مه راه می رویم. در مهی بسیار فشرده و سپید تمام عمر در مه در کنار هم من و تو مه را آرام و به زمزم با هم سخن می‌گوییم در یک مهنوردی طولانی هیچ چیز به وضوح کامل نخواهد رسید و به محض که چیزی را آشکارا ببینیم مثلا های یک اتوبوس زندان را آن چیز از کنار ما رد خواهد شد یا ما از پهلویش خواهیم گذشت اگر سر بگردانیم هم با بغض و نفرت فقط برای آنی میله های پنجره اتوبوس را خواهیم دید و یک جفت چشم را و باز مه سپیده فشرده مسلط را بگذار خشخاش شقایق تیغ نخورده بماند و شک کنیم در اینکه اصلا اتوبوسی در کار است و میلهایی و چشمهایی آنگون سرشار از خاکستر و پرنده وش مه اگر آنطور که من تخیل می‌کنم باشد دیگر از نگاه‌های چرکین قلب های کدر و رفتارهایی که آنها را رزیلانه‌مینا می‌م گلمند نخواهیم شد خائنان به خاک همانها که زمین خدا را آلوده میکنند در مه گرچه وهمی اما قدری زیبا و تحمل پذیر خواهند شد حتی شپه فکران در مه به نظر نخواهد رسید که به پرگویی های محمل مبتزر ابدی خیش مشغولند و به خیانت آنها را در مه اگر به قدر کفایت فشرده باشد میتوانیم جنگ جویانی مجسم کنیم که به خاطر آزادی میجنگند یا به خاطر نان زحمتکشان جهان. برای نفسی آسوده زیستن، چاره ای نیست جز مهی فشرده را گرداگرد خیش انگار کردن. مهی که در درون آن هر چیز غمنگیز محو و کمرنگ شود. تو از من میخوایی که شادمانه و پر زندگی کنم نه؟ برای شادمانه و پرزیستن در اصر بیاعتقادی روح در مهزیستن ضرورت است. مرد بی آنکه نگاه از رودخانه و قلاب و موج برگیرد گفت حرف تو این است که برای دلنشین ساختن زندگی باید که با واقعیتها قطع ارتباط کنیم اینطور نیست؟ مه؟ یک پدیده کاملا واقعی است دوست من تو اما از مه واقعی حرف نمیزنی دختر تو نمیگویی بیا در مه زندگی کنیم آنطور که چوبانهای کندوان در مه زندگی میکنند تو از تصور مه سخن میگویی و این مه خیالی تو مثل کابوس است و از کابوس مه به باران رویا نمیشود رسید چه رسد به بلور شفاف واقعیت وهم مه سراسر روزمان را شب خواهد کرد و در شب مهالود من را نخواهیم دید مه البته گاه خوب بوده و خوب خواهد بود شعر لطیف اطراگین خیالانگیز آنگاه که من کنار پل ایستاده بودم در قلب مه با چند شاخ نرگس مرتوب به انتظار تو و تو در درون مه پیدا شدی، مه را شکافتی و پیش آمدی و با چشمان سیاه سیاحت دمادم واقعی تر شدی تا زمانی که من واقعیت گلگون گونه های گل را بویدم آنگونه که تو گلهای نرگس مرا بویدی و از اینکه به انتظارت ایستادم با گونه های گلگون تشکر کردی و با هم دوان در درون مه به خانه رفتیم. گونه نگاه نه همه گاه. تا بچه ها بزرگ نشدهند از این طور شوخی های معطر به عطر نرگس کازرون ممکن است. بچه ها وقتی بزرگ شوند ما را به خاطر یک نگاه عاشقانه هم سرزنش خواهند کرد. بچه ها وقتی بزرگ شوند دیگر بچه نیستند. و من از بزرگها به خاطر که عاشقانه نگاه کردن را میدانم خجل نخواهم بود. به من چه ربطی دارد که آنها کارشان را نمیدانند. در کمال كهنسالی حتی یک روز قبل از پایان داستان هم میشود با یک دست نرگس شاداب یک شاخ نرگس در قلب مهی که وهمی نباشد یا زیر آفتابی تند کنار دریای خلوت وسط جنگل، روی پل، لب جاده، جلوی در بزرگ باغملی، یا در خیابانی پر آبر در انتظار محبوب ایستاد اتر نرگس را اگر از میدان بویش عاشقان بیرون ببریم میدان از عشق خالی خواهد شد بچه هایی که بدون درک معنای ناب عشق بزرگ شدند به ما میخندند؟ خب بخندند مگر چه عیب دارد بیا این هم یکی دیگر عجب قزلالایی ماهی سفید را میماند سن مشکل عشق نیست زمان نمیتواند بلور اصل را کدر کند مگر آنکه تو پیوست برگرداندن آن را از یاد برده باشی ببخش که باز میپرسم هر روز شکنجهت میکردند ببخش که باز همان جواب همیشگی را می دهم. نه فقط بیست و سه روز اول دیگر کاری به کارم نداشتند آسود رؤیا می بافتم با حضور زنده تو نه در تخیل مه در واقعیت خیال و تو در آن بیست و سه روز توانستی تا بیاوری و هیچ چیز نگویی و من در آن بیست و سه روز اگر تاب نیاورده بودم آیا امروز صبح برادر کوچک تو می توانست آن بالا قزلالای خال دار سید کند؟ چطور توانستی گیل مرد کوچک؟ چطور توانستی؟ فقط سه روز اول سخت بود این را هم گفته بودم و هرگز نمی از من بپرسی که چند روز اول برایم سخت بود؟ در مه واقعی به انتظار تو ایستادن را دوست می دارم. اما در مهی وهمی غرق شدن را برای آنکه ستمگران و ستمبران را به میدان وضوح دید خود راه ندهیم هیچ دوست نمیدارم پس بیا خودمان مه بسازیم مه واقعی و در درون مه خانه بسازیم و درون خانه اجاقی بسازیم و پلی و گلخانهی پر از گلهای نرگس مرطوب همه غرق در مه آقای من نمی‌شود آن نگاه خاکستری پرندوش را در قفس دید و باز عاشق ماند نمی‌شود که رشوهگیران را در نقطه وضوح دید و باز عاشق ماند این همه درد و دناعت عشق را خواهد خورد مثل زنگ آهن که آهن را می‌خورد این هم نمی‌شود که مه بسازیم بانوی خوب آذری من همین قطر که مه را ساختیم واقعیت را از صافی خودخواهانهی گزرانده ایم آنچه آن سوی صافی می ماند همش اندوه هست و ناپاکی و آنچه این سو همش به ظاهر پاک اصل این سوی واقعیت نیست تغییر دادن واقعیت هست سیب در چرخشی کامل سیب سالم است یا بیمار مه ساختگی مثل ساختگی است. امق و دوام ندارد، به آوردن درختان سالم سیب، به دور از جمعی آفات، این مسئله ماست. اما ما نمیتوانیم نمیتوانیم نمی توانیم همه بدکاران را قتل عام کنیم و حق داریم که در لحظه هایی، روزهایی از سال نخواهیم آنها را ببینیم. بسیار خوب، گفتگو را به زمزم دنبال می کنیم. هر دو گوشم هنوز سالم است، در هر دو گوش سالمم زمزمه کن شاید سرانجام بتوانیم راهی برای آن که بدون مه دروغین شادمانه و, شاد و پر زندگی کنیم بیابیم. راهی خاکی و باریک و قدیمی یا کور راهی نکوبیده و ناهموار و نو شاید هم راهی مرکب از این آن آیا واقعا نمیخواهی بدانی که